شامس قومی پنجم جمادی الاغل 642 قدیم دارم که بی استثناء پیش از ورود به هر شهری به جا می آورمش قبل از گذر از دروازه شهر مدتی می ایستم و به تمام اولیای آنجا درود می فرستم خواه مرده باشد خواه زنده، خواه مشهور باشد، خواه مشهول. به تمام اولیایی که در آن شهر زندگی کرده اند یا زندگی می کنند، پیشا پیش سلام می کنم. رخصت می طلبم از آنها، طی این همه سال شهر، قصبه یا روستایی نبوده که پیش از رخصت گرفتن از اولیایش، پا به آنجا گذاشته باشم. جایی که به آن وارد می شوم تفاوتی نمی کند اکثر ساکنانش مسلمان باشند یا مسیحی یا یهودی یا زرتشتی. در هر جایی مسلما یک ولی هست. اولیا از تفاوتهای دینی و جمعی و جسمی فراتر رفته هند. ولی راه همه بشریت است طبق روال معلوف اونیه را هم که از دور دیدم عادت همیشگیم را به جا آوردم اما بعدش چیز عجیبی پیش آمد اولیای شهر به جای آن طبق عادت به سلامم جواب بدهند مثل سنگهای شکسته قبرستان ساکت و بی صدا ماندند گفتم شاید صدایم را نشنیده باشند برای همین از نو و این بار با صدایی بلندتر سلام گفتم اما باز جز سکوت نبود فهمیدم که اولیای قونیه صدایم را شنیدند اما به دلیلی که من از آن خبر ندارم رخصت ورود به شهر نمیدهند کلمه‌هایم را برداشتم و به باد سپردم تا به هر چهار طرف ببردشان ای اولیای قونیه چرا به این مسافر رخصت ورود نمیدهید مدتی بعد باد با این جواب بازگشت ای درویش رخصت میدهید اما بدان که در این شهر دو چیز کاملا متضاد در انتظارت است وسط ندارد یا با عشق صافی یا با نفرت محض روبرو میشوی. اگر میخواهی در این موضوع کمی اندیشه کن گفتم اگر وضع چنین است جای اندوه نیست مادامی که عشق صافی هست همان کافی است به محض شنیدن این حرف اولیای قونیه یک صدا رخصت دادند و در حقم دعای خیر کردند اما نمیخواستم فوراً به شهر وارد شوم بالای تپه‌ای زیر درخت کهنسالی نشستم اسبم مشغول به نیش کشیدن علفهای دوروبر شد و خودم به نظاره شهری نشستم که ساختمانهایش پیش چشمم قطار شده بود. مناره‌های های قونیه مثل تک های شکسته زیر آفتاب برق میزد. هر از گاه صدای پارس سک ها، عرعر اولاغ ها، قهقهه بچه ها و فریاد دورگردها به گوش می رسید. صداهای عادی شهری سرزنده پشت پنجره‌های مشبک و درهای بسته، کدام داستانها نوشته می‌شد؟ داشتم به جایی پامی گذاشتم که هیچ چیز دربارهش نمیدانستم. کمی احساس نگرانی کردم، اما همان موقع یکی از قواعد چهلگانه را به یاد آوردم. قواعدی شهردهم. به جای مقاومت در برابر تغییراتی که خدا برایت رقم زده است، تسلیم شو. بگذار زندگی با تو جریان یابد، نبی تو. نگران این نباش که زندگیت زیر و رو شود. از کجا معلوم زیر زندگیت بهتر از رویش نباشد؟ صدایی دوستانه از فکر به درم آورد سلام علیکم درویش برگشتم و روستایی درشت هیکل و جوانی دیدم با سبیل آویزان و تنی زیتونی رنگ نشسته بر گاری ورزایی که گاری را میکشید هم پیر بود هم بسیار لاغر پیدا بود دارد آخرین نفسهایش را میکشد. گفتم علیکم السلام. پرسید. چرا تنها اینجا نشسته ای؟ اگر از اسب سواری خسته شده ای، بپر روی گاری تا قونیه ببرمد. لبخند زدم. گفتم. سایت کم نشود. اما اگر پیاده بروم، از این ورزای تو زودتر میرسم روستایی که پیدا بود به خودش گرفته گفت ورزایم را دستکم نگیر پیر است ضعیف است اما بهترین دوستم است این را که شنیدم زیر بار کلمه ها له شدم زود ایستادم و جلو روستایی سرخم کردم من که در دور تکوین خدا به قدر حبهی بیش نیستم، چطور میتوانم از سر شوخی هم که شده جان دیگری را خواه انسان و خواه حیوان تحقیر کنم؟ حالا که خطایی کرده و قلبی شکسته بودم، باید عذر میخواستم. گفتم از تو و ورزایت معذرت میخواهم. اشتباه کردم. اف کن. مرد روستایی با دهان باز خیره ماند به من. از صورتش پیدا بود خیلی حیرت کرده. مدتی همانطور نگاهم کرد. انگار می‌خواست بفهمد سر به سرش می‌گذارم یا نه. زیر لب گفت. قبلا کسی هم چه کاری نکرده بود. لبخند زد، لبخندی گرم و توعم با خجالت. یعنی کسی از ورزایت معذرت نخواسته بود؟ بله؟ گفت البته این هم هست، ولی منظورم این نبود. منظورم این بود که تا حال هیچ کس از من معذرت نخواسته بود. معمولاً برعکس می شود. یعنی همیشه منم که معذرت می خواهم. حتی اگر دیگران هم مقصر باشند همیشه من تقاضای بخشش میکنم. این را که شنیدم متاثر شدم گفتم ای جوان خدا در قرآن کریم می ما انسان را به بهترین شکل آفریدیم انسان اشرف مخلوقات است با ارزش است نه سفیل است نه عاجز در حقیقت میان نود و نه صفت خدا عجز وجود ندارد علاوه بر این یکی از قاعده هاست ها همانطور که داشت سرش را می گفت چه قاعده ای؟ قاعده خدا هر لحظه در حال کامل کردن ماست چه از درون و چه از بیرون هر کدام ما اثر هنری است. هر حادثی که تجربه می کنیم هر مخاطرهی که پشت سر می برای رفع نواقصمان طرح ریزی شده است پروردگار به کمبودهایمان هایمان جداگانه می پردازد زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است. روستایی چشمهایش را باز و بسته کرد. بعد پرسید: نکند تو هم برای گوش دادن به معزه آمده ای. اگر اینطور است همین الان باید راه بیفتی. میگویند امروز از همیشه شلوختر می شود. اما عجب خطیب بزرگی است مگر نه همین که فهمیدم دارد درباره چه کسی حرف میزند کم مانده بود قلبم به ایستد حالا بگو ببینم معزه های مولوی چرا اینقدر طرفدار دارد روستایی مدتی سکوت کرد چشمانش به افق خیره ماند انگار ذهنش هم آنجا بود و هم هیچ جا. بعد این طور گفت. بلاهای زیادی سر ده ما آمد. اول قحطی آمد. پشت سرش مقلها از راه رسیدند. سوختند و ویران کردند و به قارت بردند. بلایی که سر شهرها آوردند هزار مرتبه بدتر بود. ارز و سیواس و قیصریه را گرفتند، مردها را کشتند و زنها را بردند. من اما نه هیچ کدام از قوم و خیشها و عزیزانم را از دست دادم، نه خانه و زندگیم را. با این حال حس میکنم انگار چیز مهمی در درونم از دست رفته. علتش را نمیتوانم توضیح بدهم. اما همیشه غمی توی دلم هست پرسیدم خب این به مولوی چه ربطی دارد روستایی آرام و غرق در فکر گفت همه میگویند اگر چند دفعه به های حضرت مولانا گوش بدهی دلت از غم پاک میشود. شخصا من در غمگین بودم عیبی نمی دیدم ریا و بازی با استشادی آدمها ها می شود برعکس دانستن حقایق سنگینی و غم دل می نشاند در این دنیا آدم هایی که بیشتر بدانند آرامتر و ساکتترند. اما نیازی ندیدم اینها را بگویم به جایش گفتم بیا تاقونیه با هم برویم تو هم در راه از مولوی برایم بگو باشد افسار اسبم را به گاری بستم و کنار مرد روستایی نشستم دیدم ورزای پیر به زیاد شدن بارش اهمیت نمیداد. با آهنگی کند و سنگین و یکنواخت راه میرفت روستایی نان و پنیر بست تعارفم کرد صحبتکنان غذایمان را هم خوردیم در این وضع حال در حالی که آسمانی نیلی رنگ بالای سرمان همچون سینی می درخشید زیر سایه اولیا به قونیه قدم کذاشتم همانطور که از گاری پایین می پریدم به مرد روستایی گفتم دوست من مواظب خودت باش روستایی با علاقه گفت حتما به مجلس وعظ بیا برایش دست تکان دادم گفتم الان نه بعدا با آنکه می میخواستم مولانا را ببینم و موعضهاش را بشنوم اما ابتدا کار دیگری داشتم که باید انجام میدادم. باید شهر را میشناختم و میفهمیدم اهالی قونیه درباره این واعظ بزرگ چه نظری دارند. پیش از دیدن رفیق جانم باید میفهمیدم آدمهایی که نمیبینندشان درباره اش چگونه داوری میکنند. باید می فهمیدم تا می توانستم همه منظره را درک بکنم.